ذوری بیینه بسم الله الرحمن الرحیم بنا الله که بخشایند و با رحمت است لم یکن الذین کفهم من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتى ده کافران اهل کتاب و مشرکان گفتند از آهین خود دست بر نمی دارند مگر آنکه برایشان دلیل روشن بیاید رسول من الله صحف از جانب خدا که کتاب های پاکی را بخواند فيها كتب قیمه و در آن نوشته های ارزشمند باشد وما ما تفرق الذین اوتو الكتاب الا من بعض ما جاتهم البینه اما اهل کتاب تفرقه و اختلاف به پانه نکردند مگر بعد از آنکه دلیل روشن به سراغش آمده بود و ما امرون الا يعبد الله لصينا لدين حنفاء ويقيم الصلاه ويدو الزكاه وذلك دين القيم ها لانچ به آنان دستوری داده نشده بود جز آنکه که خداوند را عبادت کنند و دینشان را برای او خالص نماگند و شرک نورزند و نماز به پا و زکات پرداخت کنند و این چنین دینی دین ارزشمند است. إن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بدون شك قافران أهل كتاب ومشركون دراوش جهنم و در آن جاودانه خواهند بود، زیرا آنها بدترین موجوداتند. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات اُلَائِ هم خَيْرُ الْبَرِيَةِ و کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی خوب و شاگست دارند، همشان بهترین موجوداتند. جزاؤم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه پاداششان نزد پروردگارشان بهشت های جاویدیست است که نرها در آن جاری و آنها در آنجا جاودانه خداوند از آنها راضی است آنها نیز از او خوشنودند این پاداش برای کسی است که نسبت به پروردگارش فروتن باشد راست گفت خداوند بلند مرتبه و کاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت صل الله علیه و وسلم